بیر خمده را من بر نبیاد این بر تلرمه ازش ما جوانیم اون ملکات اون صفات اون ما ملکیم این خب بارد بیشه پیدرش پیدرشم گوه پیدرشم گوه پیدرشم گوه پیدرشم گوه ویش کشم این را نشغول خمد خلاص کسی رو گفت بابا بین هم گفت بارم می این فاصله به این هم گفت باشد خلاص شد هم رسید هم که آه همه رو بینم همه جاید ماهای حساب شوهونی یه اکسیست اشتراک ما با هم علماء السلح اکس میگیرن مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال خیلی و هشت نفر این میزان ها منبرش این هشت ما شوریم بواحثم یه یه همیشتی چی بواحثم بلاخل هم وقت همین این یکیز ها یاد هشت نفری بودن و با منبرم بود برای همه هشت نفر و خیلی محکم کاری و تلان و با با آمان و یعنی ما چیز قوتش اونا عکس اما اون شد، معنویتی داشتن چه کلمیتی داشتن چه توقعی در علم داشتن چه توقعی در معنویت داشتن اون که هر کدامش خودش کرامتی بود فضان از جمعه بین کرامتی اون که دیگه مثل مثل محال اگه بگیم خب بابا این مدفقت ما من شیخ بود اینجور نبود این خود شیخ میگن میرسید سر قبل استادش در کربلا اون گفت که از سران اگر تو ظاهر بودی ما ظاهر نیستیم بلکه یک عبارتی غریبه به این که پس،, پس محسسا و غریقه مسیانه خیلی بودن این بود اجایل و خرابی شکراماتی همین میزه میگن کجا همیانش این همیان مثل ها پسید همین را داره که شمید لب و قاصد هست در میاد قوم و میپرسی بیزاد بسید نامی هست خود میاد در, در بدون این که ایر این شخص را خودش میزاد میاد پایین درم باز نمی از کنار در یه سراخه ای بود و اون خیلی بود. توی کنار در اون کلید را اونجا قیم می کنند. شراقی هم قیم اونجا شاید می داشتند. یکی از اون سوراخه بدون اینکه هیچی، نه این را نه این صحبتی بکنه، اما اون همیان را به دستیم بگنند. این همیان خود از این مجزی که درش بگنند. کجا بوده شوش نمیدونم. شوش قفقه اونجا ها اونجا ها شو شوش تفلیس شوش نمیدم بگه هلینا مینقرم نیدو دونجا عیالش هم دیدی که خیلی ناراحت بود بخیلی نجب بود نه نه عجب تا همین کرا من دست کشیدی خیلی خاصن که خادم او باشی فلان اینها اسباب فلان خادمی میشه در از تا وقتی افاق کرده افاق کرده هم دمه قبل میزا می رو دفنش میکنم و من روی سنگم نویشتن یادی رو شایدم مثلا سنگ جایت هم یه وقتی خارج از اصاف میزا حساب میشده محالا هم داخل در این اولادش اینجا هستم این اولادش چند تایی فعل اولاد این همه ش زختریست و همه ش ساداد هستم بیره ساداد نیستم این این اکس بگیرم ممکن اکس امرو بگیرم به کتاب یک دستان ها باشد اکس امرو بگیرم مثل اونا کتاب داشتن دوام امروزاً ما کساف به صفادی مشکل برای فرقار دارم کنون خورسانی این مهین مهین منزر آنو دارم کنون خورسان سالس نرس پاس ما من خفر ساله بودم جد ما شاگد بوده و در تاجیه کوفی یک شیخ را یه نهاری دعوت میکنه بونگا میره اصلی شد نمیست نمیست اینی که هدی تمام تاریخ شد تاریخ شد و موضع عجیب میاد بسی جاتی ناجوری رانی روز دعا که را میگو شیخم از کرد و دعا کرد همین همین که از شب کرد و دعا کرد خواهد شد که همون رو تمام شد ایشون از خیدرش نام میکرد خیدرش بخورده من بودم اونجا بودم خودم دیدم رو اون شد رو این ها و شوگل نشه راست عالی شوگل